امام سجاد علیه السلام چندین خانوار معاششون تأمین میشد در مدینه و نمی از کجاست تا وقتی امام از دنیا رفت اون قطع شد اون کمک ها فهمیدن این کمک ها از قبل امام سجاد علیه السلام بوده پاس یه شب که می گذشت انوانی از نان بردوش می گرفت در خانه های مستمندان می بدون شناس به اونها میداد و برمی میفرمود صدقه پنهان آتش خشب خدا را خاموش می کنن زهری که از هم از علما بوده هم از اعیان و اشراف و شخصیت های برزسته مدینه بوده او میگه من یک شب در کوچه از کوچه های مدینه شب سرد و بارانی عبور می کردم از دور کسی را دیدم در تاریکی شب میاد باری دوش دارد نزدیک که رسید امام علیه عبدالحسین زیندالعابدین علیه السلامه تعترب کردم سلام کردم گفتم آه در این شب کجا می روید شما فرمود من سفری در پیش دارم این توشه راه من است می به مکان امنی برسانم گفتم غلام من همراه من هست بیاورد فرمود نه گفتم خودم همراه شما میآورم بار شما فرمود نه من خودم باید طوشه خودم را خودم امر کنم به خودم به مقصد برسامو شما را قسم میدهم به خدا برو دنبال کارت مرا به حال خودم واگذار من رفتم بعد چند روز آقا را دیدم گفتم آقا سفر شما چه شد که سفر باشه فرمود سفر مرگ منزورم این بود. سفر مرگ در پیش دارم و توشه سفر مرگ را فراهم میکنم و توشه سفر مرگ هم ترک گناهان و خیرخواهی به مردم دستگیری از مستمندان است اونو میبردم برای توشه سفر خودم